یا که قصر عمل سخت سوست بنیاد است بیار باده که بنیاد عمر بر باده است قلام هممت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیر دازاده است چه که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه مجدها داده است که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین نشی منت و نین کنج مهنت آباده است و را ز کنگوره ارش می سفیر ندانمت که در این دام گ چه افتاده است نصیحتی کنمت یادگیر و در عملار که این حدیث ز پیر طریقتم یاده است قم جهان مخور و پند من مبر از یاد که این لطیفه اشخم ز رحروی یاده است رزا به داده بده و از جبین گره بکشای که بر من و تو در اختیار نکشاده است مجو درستی عهد از جهان سوست نقاد که این عجوز عروس هزار داماد هست نشان عهد و وفا نیست در تبسوم گل به نال بلبل بیدل که جای فریاد است حسد چه میبری ای سوست بر حافظ قبول خاطر و لطف سخن خدا داده